باسرين هاوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي تشهتيم جنور نوسيني حجر بكرياني شو بدنا وي علي مارکردنی کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشویست جوانترین ترین سلاو خوشحالین لبشی سی و پینزی خوین کتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نوی خزمتی <متصفح> ایوی برزو و حوگرانی دنیا کتیب فرمون لگل بن. لکتی به چشتی مجاورده، هجار مکریانی بردوام ده به لسر گرانوی جهان نامی خوی، لوکاتی که لبغدابو کاری کرده و دلیه حماسا کانی مرانی که خوان ملک و دولمندی گورو بو خوی لیسانسی حقوق بو روژگ برای که خوی بنابی وریاه یه ناکبیستو ما بالای توبی <تصفح> و درسکانی لدبیرستان بخوینه عمر دا بابا بغداد بغدا دو تختی نوستنی هرزان بایی دابومی زیلوی زبرم نسر راخست بونو خوم لسر یکیان دخوتم اگر بوار رازی دبی سر چاوان شووتم ودیا باب چین شیو وتی ودی ما مستا بو نانو, نانو خیاریگ نخوین نجووتم کاکا. من نگوندی کانی مرانم هی من ملیونیرم من چم گوشتی بر و خوم تو کوری خود بخو پیام وی مانگو نیویکی نبود کلیم دایوا زورم نداست ماید دوکان زیان کرد و چونکه کلانکی دوکانم زور چالبو روز مشتریکم به حال دستکود ای خدا خجالتی که ک زیادم نکه پیاوتی کرد و دبی بیدم ناچار دوکانم به تخت و مختوه جگل ماشین اکاسیس هر چند به هفت دینار فروشت لوتاگی سر بازار کشمگیست وو جوری کملا آتیلک به دو دینار بکریگرد وچلنه بو اماراته کی گورابو ملک حافظ کی قران خوئنی سر رادیو بو همو جوړه کانی به پیوی سلطو ربن ک زور بیان شوفیر او شاگرد شوفیر اتوبوس خطبون بکری درابو دو تخت شهانکم بردا اوی و ریاشم کردوه هاو منزل ک فقیرو با حقی خوندل دکانه چې ملکی اوقافونه مزایده ده برکوت کله پنامزګوتی فصلبو تابلوی کملیدا استودیو سبح منګ چواد دینر اجار بو 22 دینر لم مزایده کده بو چیوم نه مبو تننت ویترینکی شوشه ته بغرم نبرد کار کم و برکوت لماوي چوار منګ صد دینر کی کاک زیاتم بردا وګوتی من ب قرضم نه داوی لمن کیشه لو سن هتان 90 دیناري لورګړتموا چقی رشم کرد پایزان و زستانو جشنان کارم باش بو بالام بهاران و حاوینان کمم پیدا ده کرد ماویک لحاوینده وامله هد بشینانی خومیله پیدا نه بو ناچار چون تا دمو پایز کار پیدا کم که که زیاد للای رشید عرف سقا که مهندسی که کردی ملیونیرو بساز فروش بو روژی به نیو دینار دای مزراندم که سرکار گر بم کم یکم با حقوق کد بمینی هفته دو هم لقرار روژه حوت پنجاییم درایه. هرچی گوتم وانابی خوهل نگریه شیلوه بیلوه بهرینه ده. گرگر حتما و سر دوکانه کم. تازه او دوکانم دانابو احمد عثمانی حوالی بخاریستم هد. و تی که تو نوی کچاک و پاکت هی؟ دلین گوتو تا لرومانیا سوال کرم دیوه. گوتو تا جنی پیسی لیهن. تو بختانی وا بوده که؟ و تم احمد یان. هر مره با عین آسمانیش شب اگر دروی بور بکري دیاره بتالو په فلسیکم ناوي هټيو نقبد پیکو دو سوال کړم ندید تو نبود بوډ د ګزور به حوالن شو لمال جن رومانیان را دي بیرنو نان ونونيني خوين چت بلم اي شوتي راز دکې بلم نه به خلک رمکی بزنن سالد بوم له دوکان نانم د خوړت بیا نیو نیو ورو شو د بوبت مچشت خانه یان قاو خانه که هیچ پسن ساز یکم بو نیا کرد. تنیا پاری اسپاب کرینی اکاسی و مخارجکم دردینه. با تنیابم بوم. هر لبیان و تا ساعت دو یازده کرم لجوری تاریکو لبره کردنی مشتری و پاک و خیون کردن و شتیوه بو. رو پتر دبوی پتر لشش ساعت بپیو راوستم. زور مندوده بوم. بلان دلم بو خوش بو کلن و کری و شاگردی رزگانم بو و کاری خوامده کم. کورډه کې نه ناسي او بوم لګرکه چې هم عربو زبر لاتو پاتی پاتې ګرګ سله و شرעי ان بو دنامو قالته ان پی کړدمو د عذابین دنم بلم نبرد ک زور لچیرننم بونه دوستمو حرمتیان دگرتم. گرفتم بګو قالته یک من د دواندو پیکنین من سازد کرد تابوت یک دیوار به دیوار مو بو روج یک سیدی چې پشتکور سریګی بو بران اجنو دلرزی داوای خیره کېله کردم منيش واتم سيد جلدناي وات بكرم واتي اي خود ارلاوستاوت بكا بد ما دوكاني تابوت کر واتم وسته شاكر لحسابي من دست يك جل بدا بسيد اوش فرمو بو پش دوكان حلب جيره سيد کلا پش دوكان چاوي با تابوتان كوت قيته وابو باور که تاجيوه حلناي لو باري جادو ملي لزنوداننا دا تانويا بمرم دا تانويا بمكو جن آي ترسي مردن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 تابوت به چوار دینار هر تابوتش ابو انگر و ابو کاسب چوار ست فلسی پتر نه برد. دوائی مردوناشتن ریشه ده دهاتو خوی فیالی خواهی ورگری. دابوا شراچاقی اک نبیتو. تا نیو دیناری لشا کردستاند قیرسپی دابو. روش یک غنی بلوریم لی پیدا بو. ماوی یک میوانم بو. هاتو چوی شعیانی دکرد. که او دم ببونا دو دستی دش بیگتر. القاعده بس روک رایتو شغیله به جمال حیدری که کردیک بو غنی کی خدایتی ده نوده ده کردن پیکان کان بینی غنی هات وریام للا نمابو پی که و لجورکی منده ده, ده جین حوال روز زوری لوم کردم پیوتم بوهندی پیسو بو, بو خلی جورکت تیکل پیکلو نامرتبه من بی فیرت کم چون دجی لپاش حوطیک حلم دستند پیم دگو هستا نانوچا حاضره حل سرجه و دستی بخواردنده کرد دموچهوی ندشوشت کونه کرده که خلکی حاجیالی کنه دیلای سابلاغ چل سال دبو لبغده بو کردیه لبیر لبیرنما بو عربیش فیرنبو بو سرایداری او ساختمانه بو زمانی که قصده کرد افریتم دویزد دو بی باتوه سریک شو نبو چند جار ایجار دارکان راستم نکنه بو بخیری خود ور او کرمان بو تیبگینه حیر من لمن ابراهیم ته د قیشت مو کثیر روج یک سربوجوره کمن د دکاو چنق سیک دغل غنی دک غنی ته ناګه ل پر به ترکی در برادر کری کری کر مام ابراهیم را کړده وو یواره بزی ول منی او می وقت ابو بم کوجی او چی اوه وت مام ابراهیم او شیطا او تا زل شت در چوه و چی هم بر و خوشم دم زانی شوی خری کی دوکان بم غنی هاد و تی کوه پریس و تیم پریس که و تی چون ادی اواره کسرد با مشتری اکسکانی مدرسه و گرم نم دایی و تیم با نازانم و تی بگره زور گرم نبو او شو تالای روش هدادانی نما بخیال سازی دابو من بوام هایوشتی یک لوکچان حالی گرتوه توا باوکی مدیری پولیسه لیور گرتوه مدرکی گرنگیتی دا باسی سر جر بلب شق لناو چوانی خویده دا دا گریه دای گو آخر بی انصاف دست رای پریس که کشی دزگیرانم بو بیادگاری دا بومی دام گو دا استا قومه و چار چیه قدیمی گو تویانه باسی قدیمو ملایتیم بو مکن من با خوا بره بهانی دین له دکان دتګرن توش من یعنی نشان ده ل زندان د دا دند دا رزن بهانی گفتم ته خو م دڅمه اگر پاش چاره کې نه هاته مو اتو خوته ونکه په ترس ولرزه ول دو رووانی ما بر دکان دکاس ل وی راوسته بول راوستان تا ما راشتن چوم دکان گس کم ده توشی توشي پر اس زرد هاتهم قام کم د ګرکه کړدو گفتم غنی نم دي نشانم ل تاپیم گوتو لخوشیان گشکبو. جهر وک هاتو چوی گرمی دگل کومونیستکان هبو، هاتو چوی پارتیو برایم احمدیشی دکردو خوشیان دویست. گوتی در رومه و سابلاق. گوتم که که دت ناسن، دت گرن، ایرد چه تره؟ اوتی نا، اوانه اراقی زور نتیگیشتون لسابلاق بشم گرن دیر چه تره؟ رویشت لسولیمانی و بینو سی بوم کت یکم بجه ماوا، سرو دی کومونیستان دنیا م د نو قوله دراوکی دا طاقت کردو بون بنیرو نو سیم کوټکتم دا بسوال سوال وابزانم واب ځانم بدر دی پریسکا کڅو رنگ استا مدیر پولیس فیر پولیسان بک ایتر هر او ګرانو بو 20 غنی جيره او 24 سال ل زندان دمایو هر وقت چون پارتی دهات نلام دگل شیویانش ریک بو. شونامه هر دو دست شیویکانو بلاوو که پارتیم بودهات. جمال حیدری بردمی سربان قاو خانه اک دلیده موکر اگل وتم که و. و جمال من کردم. اوه حزبی تو ده که اوه دلن ما مستامانه ددن بما فکر دادنی. د دا اوه بسه که ازادی کرد بکن تا فریو بخوم. هر دفرمون زوی دده این با ورزیر. ایوش دیگو حزبی تو دی ما مسته من راسته بلان با سی بشی کرد کردنی خطاشی گوره ام جربه بش نوسی درو دکا حکمی بکیوی دست بلین پیک نه یه نی توش دران باب که دیگود آخر با فرمونده ستالین روپر اوانده ستر امنده کرد ملت نیه دم گو برا و امنو تو با کرده قصه دکنی دی اره هی نوزمانه که سر با باس تالین نه با بی لینین بلای چون لی ملتی کرده شوریه ما و لید زیاد به دوکان و مالکم جگه قاچه و خوچه بو. نه زنم چون بو کزا به حیران را بو خوی با ما ویگ لجورکم دا شرده و شوده گود سبای خوم تسلیمی پولیس دکم و چه دبه بابه دلی تاو تنگ دکردم پیدا گوتم ملا با زندان او پریم سا چکواله خودم بدهه منش دم گو با تو دیگو او خوالیش دبم دم گو باشه دیگو از پاپی ریشتاشی نکشد برم دم گو که که باشه اویش ببا سبه زو یک تریمان مزده کرد اوم دا چاو دا دا تزا تالای اواره بیرم با چرانوسی او خریگ بو شوکه با سرکزی دهت مو زبیهی لناو دو کالی جغاره دا خنکاو چاوکانی گ دیسان سلنوی، فلان و فلان شدت با من باشه بله با دیسان هر بزمکه پیشو نه نچو روش یک تاشی بو، سور وکچوندر چوان در، کرواتی لخوی دابو و تی ملا، دموی شبکه بکرم، خوام بگوارم پولیس نم ناسی ها؟ اینه کیشم دوی؟ و تن بخوا، هر سگی کت کم فیته بولی دو دو ات بابچین باب شبکه بکرین؟ سر من به مغازه‌ای که زور شبکه فروشی ده کرد هر لسر ای نو روانی و کیفی نگرد من دوی کرده بوم شبکه ای که راشی لسر نه ویتی ها ملا چونم؟ ویتیم چونی؟ بخوده هر لپیر هر منی ابن ده چی؟ که برای خوان مغازه که و ابو عربه لفلقه پیکنینی دهو جوشی خوادو خوانه بواوا پی من ویت دایبرم. نرخی شبکه که چنده کرا اگر د قد الکدر و دلخوا شکر خرج بکر دایا اونده پینه کنیم به 600 فلسیده فرشم بلان ایو 400 مدنی خاله رحمت منصوری نو حساب لاگی شاگرد اکاسی دک لو پرین نداری دابو لا اوچل دخو یانه ملایخوم که حقیقه و نداو هیڅ نبه برچایش بو خوی درست ک دو ک همودسته همو دسته کی دهته تګیبون کمن امینمو خبر ل کس نادم کومونیست پارتی اخوان المسلمین عكسی قاچاقشیان بودم دینا. روز گیجگ لوسیویانه کنم دناسی هاد عکسی کرد. جمال قادر نمیکه تجور کبر رويش. وتي او نوی اسماعیل رسوله لکمونیست از لکانه مالی لفلان ساخت مانده شرط امر رو بگرت نیدم. اسماعیل رسولم دیتوه وتم آوک رو هاگله. اگر تو ناود اسماعیل رسولا خود بشاره وچوتي ناکاک اتو غرتي. امن و نیمه. نعم سپای ارورج پولیس هست، وقتی شو اسماعیل رسول گیر آو، تکایه نونکانی بمنده باب نیاری. پیاده لناوشار، فیلمی دگرتول دوکان بوم چاب دکل، وقتی نوم ابو باسمه ایتر وقت شگرد یکی باش، کاری دگل کردم. راجع برادر گوتی او پیا و خطره، محکوم بهعدام رای کردو. شو پرسیم، ابو باسما وادلن، خم خاشار و تو خاشار، پیاموه وقت دالن، هلک دک خرطاله دا بر مکه بای درکاندم کراسته پیکاتین فیلمکان با, با مندالک دا بینیریو بخوی نه منگی اگستی سالی 1954 روژی لدوکان روتوشی اکسم دکرد پیر جنیکی رواندوزی کدم ناسی هر لدرگه حتا جور وکجنه آربان لا هلولوی دا وطی مزگینین دای مارو من دارد لوعاتی نه اولا ماری خات شوکتی نه واقعی کم بردو تاسم لو دامده شش درم یعنی من تمنه بپارم در ارض و آسمان شک نابرد شنو منال بچی بخیوکب پیرژن کدیتی مدبوم و رنگ یک و برد بهستو چرپل دکان درکوت و ازی لمز یعنی سندن دکان دخستو به بار بیرو خیالاته و بر مالی خط شوکت دچوم لکولان توشی برادر یک بم بناوی همه از چوری کونه صابلاگی کلطاج رویشتنی یرمی با فلسطین لجگی او اندلالی بازار یک پیوتم ها برام او خیره پشوکاوی، و تم حمی برم، خراب قوماوه، همه دا گلم گره، چون بازار، زیلو، پتو، قابو، قاشخ. هر هرچی مال فقیره کی پی آوادنده بیه، بایی سی و شش دیناری کری حمبال هل گره، خود مختن خود هر وقت هد بو ام قرزم بدوه، مالی خاد شوکت خانویگ بو لعجار محمدی خاد زیبانه بکی سابلاغه، اموزه عبدالرحمنی که یعنی خاش شوکتی ج بقسی خوی کنه بگزادی با جوان بوا جا چون که میلد هیچ کارن بوا مالبنایوی خاشوکتوا بوا جوی اک من لی بکریگر سی پال من با عرض دادا نو مالکی زمانی سلطیشم بقال بخشی لهمین سالی هزار و سیاس و کبوه تویش چه مساقز کدوم هایی نی صالی هزار و صد چلوشش من معلوم نداری خم ندی تبو خبرشم نده بیستن مقصودی خزانم کباجم هشت بود تمنی سالان بو تمنی شرکای کریشم کنایک رابو محمد شور منجو جن چهارانی میر دیتیول مالی عبدالله برعمدجی چنچارک برای هتون لای کوره مالی امام نشو. خری که بخیو کردنی کورپه تقانکی خوی بوا، و لپش هشت سالوشتیک بسواری اسب دگل ما محمدی حاجی الله گیوه تسلیمانی و لیوه با و قطر گیوه بغدا. کوری چوار منگه نو ساله و باوچینه پش نو سال جدای زورتال پک شاد و شکر بوی نوا. هرچن هر پید کنیم و شادیم دنوان. بلام لخجالتیان کزم لجرگی دهد، ده هشت سال جنه هشت سالانه با بیوه جنه چاوان ورم بیو من داله که بابی لباوشده بیو صبری کرده بیو تاوانی او همو چره راشیش من بو بم نم دا مو چونی دل چونی دلخوشی دامو بلان باش بو او هیچ گلی لزمانو من نبو زور شکران بجیر بو که دوباره گیشتوی نو فقیرش بین دل من فقیریش بین دلمن خوش دنیا گلی لدونیا نکین نا زنم لکوی که اوان بو ناودرکردن حولدن جنان با فرمیسکی چاو نرخه کی د بجیرن بلې فرمیسکی خوش کوج نیمن نرخه کی زور گوریان بجارده بو او نرخ بجیرا فرمیسک حل ورانش و اکثر بازي بیناون کسب با هیڅ ناګری بلهم لرستي پالوانی پهلواني گوریدستان هر اوانن اگر کاری دنیا لرو عدالت بوایا د بوای له جګی کوتل میجو کوتل دایکو کو خوش کوج نکنیاند له میدان شهرنده برسکرده كوا عدالة كوا دو حقيقة بیگرانی عزیزو خوشویست لیردابم شیوه حتی نکوتایی بشی سی و پین زیخوه نوی کتبی چشتی مجاوری هجاری مکریانی تا بشگیتر و شوکیتر پیک شاد دبی شاد و بختوار و سرف راز من.